سلطان ولد، قونیه شبال 645 پدرم پس از آن شب وحشتناک دیگر هیچگاه مثل سابق نشد مدتی طولانی چنان پریشان احوال بود که گمان کردم عقلش را از دست داده هنوز هم دار و ندارش را میان گداها و یتیمها و بینواها تقسیم میکند به کسانی که از او میپرسند چه میکنی فقط میگوید امرالغیص چیز دیگری نمیگوید امرالغیس یکی از عمرای بسیار ثروتمند و قدرتمند و بانفوظ عرب بوده که در ناز و نعمت زندگی می کرده به علاوه رعایایش هم دوستش می داشتند و احترامش می گذاشتند. اما روزی به شکل غیرمنتظره قصر و تاج و تختش را رها می کند مال و ملکش را می بخشد و خرقه درویشی به تن و اصابه دست دیار به دیار می گردد. پدرم می گوید پادشاه درون من هم رفت، فقط درویشی ساده باقی ماند. مادامی که شمس نیست، من هم نیستم. من بعد نه خطیبم، نه عالمم نه فقیه. دیروز بازرگانی موقرمز که از سر و رویش تزویر و تقلب میبارید به در خانه من آمد. گفت که از بغداد آمده است، گفت شنیده شمس ناپدید شده، من از قدیم او را میشناختم. دست راستش بودم، نزدیک ترین کسب او بودم، بعد طوری که انگار دارد رازی را فاش می کند، خم شد و در گوش پدرم گفت شمس سلامت است، و فعلا در هندوستان پنهان شده و ادعا کرد منتظر زمان مناسب است تا دوباره به میان مردم درآید. خیلی واضح و آشکار بود که مرد جوان دروغ میگوید اما در کمال تعجب پدرم برگشت و گفت در مقابل این خبر خوب که آورده ای هرچه بخواهی به تو می‌ده بازرگان هم در کمال پختگی گفت که زمانی دلش می‌خواسته درویش شود اما حالا که زندگی او را به سمتی دیگر سوق داده خیلی خوشحال می‌شود صاحب ردای عالم مشهوری همچون مولانا شود و پدرم به محض شنیدن این حرف ردای مخملی زربفتش را درآورد و به آن مرد داد همین که بازرگان رفت نتوانستم جلوه خودم را بگیرم و گفتم پدرجان از این جوان هیچ خوشم نیامد چرا ردایتان را به او دادید؟ معلوم بود که دروغ میگوید پدرم که پیدا بود غرق در فکر است؟ لبخند زد و گفت مگر نشنیدی که گفت شمس زنده است در مقابل چنین دروغی یک ردا دادم مگر زیاد است فکرش را بکن اگر حرفهایش راست بود اگر شمس واقعا زنده بود آن وقت ردا چیست جانم را میداد.